به نام خدا با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز داستان درویش و اجده های هفت سر متن کامل قصه از کتاب افثانه ها و باورهای جنوب شما رو به شنیدن اون می میکنم یه روز درویشی بین مردم توی میدون نشسته بود که ناگهان دید که شعوله آتیشی از دور به طرفشون میاد و اجرهایی که هفت سر داشت خودش رو وسط میدون انداخت هر کسی از ترس به گوشهی فرار کرد مگر همین درویش و پیرمردی که خیلی فقیر بود درویش که دید همه وحشت زده شدن گفت نترسید این اجرهای هفت سر زن میخواد چه کسی حاضر دخترش رو به اجده ها بده؟ همه آدما که دیگه ترسشون ریخته بود دور درویش و اجده ها جمع شدن اما هیچ کس حاضر نشد دخترش رو به اجده بده مگر پیر مرد فقیر که دار و ندارش از مال دنیا فقط همین یک دختر بود درویش دختر پیرمرد رو برای اجده ها عقد کرد و اژدهها دختر رو روی کولش گذاشت و رفت سالها گذشت پیرمرد هر روز به میدون میومد کنار درویش مینشست و به حرفاش گوش میداد و درویش میدید که پیرمرد روز به روز افسردهتر میشه اما هیچ حرفی نمیزنه یه روز درویش بهش گفت پیرمرد میدونم که دلت برای دخترت تنگ شده میخوای ببینیش؟ پیرمرد خوشحال گفت: بله درویش نشونه قاری رو بهش داد و از پیرمرد خواست که هرچی رو که اونجا می بینه برای هیچکس تعریف نکنه پیرمرد قبول کرد و راه افتاد پیرمرد از راه های زیادی گذشت، از بیابونها، از دشتها و کوه‌ها تا به دهانه غار رسید و همونجا خسته و تشنه نشست. هنوز نفسی تازه نکرده بود که ناگهان دختری از پشت قار بیرون اومد و پرسید چی میخوای پیرمرد به دنبال چه کسی میگردی؟ پیرمرد فقیر گفت گشنم تشنم از راه دوری اومدم به دنبال دختری می‌گردم که یه زمانی زن ها شد حرفای پیرمرد که تموم شد دختر که کلفت بود به سرعت توی غار رفت و جریان رو برای خانومش تعریف کرد خانم دستور داد که پیرمرد رو به داخل غار بیارند اما پیرمرد وقتی داخل قار شد از تعجب نمیدونست چی بگه داخل قار مثل قصر شاه پریان بود پر از غلام و کنیز و پر از ظرف و ظروف نقره پیرمرد حتی دختر خودشو هم نشناخت اما دختر پدر رو شناخت اونو بغل کرد و بوسید و گفت من دختر تو هستم و این دم و دستگاه هم زندگی منه پیرمرد مرد آه بلندی کشید و گفت دخترم زندگی تو خوبه اما چه فایده که شوهرت اجرا هاست دختر خندید و به پدرش گفت شوهرم کلید داره بهشت و جهنمه و اجره نیست و بعد جلوی چشمای پدرش وردی خوند و یه دفعه جوانی رعنا و بالا حاضر شد و به پیرمرد سلام کرد دختر گفت این هم شوهر من پیرمرد یه ماهی رو پیششون موند یه بارم با دامادش به بهشت رفت و همه جای بهشت رو دید حتی به جهنمم رفت و سالم برگشت و تنها گوشه انگشت کوچیکش سوخت و تازه فهمید که دو ریال به کسی بده کاره. سر یه ماه بارو بندیلش رو بست و هرچی داماد و دخترش خواستن که پیش اونها بمونه قبول نکرد. پیرمرد به دامادش گفت هرچی زودتر باید برم و دو ریال بدهیم و پس بدم. پیرمرد دختر و دامادش رو بوزید از اونا کرد و به سرزمین خودش برگشت درویش و اجرهای هفت سر افثانه ها و باورهای جنوب صفحه شست و پنج روانی پور نشر نجوا چاپ اول 1369 شنوندگان عزیزم امیدوارم از این داستانی که براتون گفتم خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید و در داستان بعدی هم منو همراهی کنید همه شما رو به خدای مهربون می‌سپارم آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین‌های سحرآمیز سفر کنیم، جایی که پری‌ها و کتوله ها زندگی میکنه <تصفيق> کانال هزار افسان همونیه که دنبالشی همون دنبال دنبال دنبال. جایی که داستانهای افسانه ای و اسطوره دنیا به صورت صوتی و جذاب برای شما روایت میشه کانال تلگرامی هزار افسان سفری به دنیای خیال و رویا سفری <تصفيق>